نوار شماره 24 بی از سری نوارهای رادیو ایران. شاعران قصه میگویند. قسمت دوم، وی و رامین. تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران، تهران، به تاریخ دهم ده اسفند ماه 1355 شمسی. تکثیر کنندگان مراد قرقلی، عبدالله قفاری شاعران قصه میگویند من در صورت هر قصه ای خرد بینان را زمعنین حسی و رامین رامین قسمت دوم در نخستین بخش از داستان ویس ورامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی سخنسرای نامی قرن پنجم هجری صاحبدلان را رهاوردی بس جان فضا آوردی سخن بهدانجا رسید که شهرو برخلاف پیمانی که با شاه موبد نهاده بود دخترش ویس را به همسری ویرو درآورد وقتی شاه موبد از این قصه آگهی یافت براشفت و برادرش را با پیامی نزد شهرو فرستاد اما با پاسخهای دروش که از ویس به دورسید خشبین گشت و به کشور ماه لشگر کشید و در جنگی که اتفاق افتاد با آنکه که قارند پدر ویس کشته شد شکست در سپاه شاه موبد افتاد شاه موبد از آنجا بازگشت و بران شد که در کار ویس با برادرانش زرد و رامین رای زند باشد که درمان درد خیش باز یابد شاه موبد مشکل خیش را با برادران در میان نهاد رامین او را از این سودای بی حاصل نکوهش کرد اما دیگر برادرش زرد شهریار را به فریفتن شهرو مادر ویس وازیور و گوهر برانگیخت. شاه موبد را رای زرد پسند آمد و در حال سیموزر بسیار نزد شهرو فرستاد شهن را خوش آمد پاسخ زرد همانگه نزد شهرو نامی کرد به نام در سخنها گفت شیرین به گوهر کرده ویرا گوهر آگین که شهرو راه می را مفرموش سخنهایم به گوش داد بنیوش بدین یک روز کام این جهانی نخرتی ما رو درد جاودانی بدین دین سان بر یزدان مکن پاک مگو بر کام احری من سخن پاک تو خود دانی که چون کردیم پیوند بر اون پیوند چون خوردیم سوگند چرا اون احد و پیمان بازگشتی چرا با احری من ام بازگشتی تو این دختر به فر من بزادی چرا اکنون به دیگر جفت دادی تو این پیوند را باد میدار همیدون دل از اون پیوند بردار وگر نا بوم ما از کین شود پست تو انگه چون توانی زین گنه راست وگر زین کین به مهر من کنم در دست ویرو پادشاهی شاهی جمله وی را دستگاه هم واد مهتر سپه بد بر سپاهم. چو باشد ویس بانو در خراسان تو باشی نیز بانو در کوهستان چو شاهنچه از این نامه به پرداخت خزینه از گوهر و از گنج پرداخت به شهرو خواسته چندان فرستاد که ندفان کرد آن در دفتر یاد شتر بود با مهد و اماری دیگر پانست شتر بودند باری تو گفتی در جهان گوهر نمانده است که نم موبت به شهرو برفشانده است چو شهرو دید چندین گونه گون بار چه از گوهر چه از دیبا و دینار کجا در گاه دشبر شاه بکشاد پسانگه ماه تابان را خبر داد شهرو را دیدگان از آن همه گوهر و زیور که شاه موبت فرستاده بود خیره شد در دژ را گشود و شاه موبد را به درون خواند. شهریار شادمان گشت و ویس را که از شدت خشم و مهنت بیتاب شده بود کشان کشان با خود ببارد چو در دژ رفت شاهنشاه موبد به وقت و ایدون طالب بد همیشد شد تا به پیش او شاهنشاه بلورین دست او بکرفت ناگاه کشان از دژ به لشکرگاه بردش. به نزدیکان و جانداران سپردش نشاندندش همان در اماری اماری گشت از او باغ بهاری همان ساعت به راه افتاد خسرو برابر گشت با باد سبکرو شتابان روز و شب در راه تازان به روی دلبر خود گشت نازان چنان شیری که گیرت گور بسیار و یا مردی که یابد گنج شهبار اگر خرم بود از دلبر روا بود که یارش بهتر از ماه سما بود روا در کشید از بحر اورنج که ناگه یافت از خوبی یکی گنج وقتی ویرو همسر ویس بازگشت و از فریب شاه موبد و ربودن ویس آگاه شد سخت پریشان گشت و سرشک هرمان از دیدگان فرو ریخت زیرا میدید که پادشاه سال خورده. در برابر سیم و زری که سپرده گوهر زندگانی او را با خود برده است چو او آمد شنشه بود رفته به چهار ماه رویش را گرفته هم از باغ وفا رفته بهارش هم از کاخ صفا رفته نگارش دل ویروز هجران بود نالان دل موبد جانان بود بالان چونان بگس است قم رنگ از رخانش که گفتی از تنش بکسه است جانش جدایی پرده سبرش بدرید ز مغزش هوش چون مرغی بپرید دلارا با بسی شکوه و جلال به سوی مرو روی نهاد رامین برادر شاه موبد را که از دیرباز مهر ویست در دل آشیان کرده بود نظر به چهره ویس افتاد و از همانگاه آتش پنهان از سینه شعله برکشید و آرزوی رمیده به حریم دل باز آمد به همی شد خرم و شاد جفاهای جهانش رفته از یاد اماری از رخ ویس پریزاد نگار این خانه مانی استاد چو بادی بر اماری برق گذشتی جهان از بوی او خوشبوی گشتی تو گفتی آن اماری گنبدی بود ز موی ویس یک سر انبرالود گهی تابنده از وی زهره و ماه گهی بارنده مشک سوده بر راه اماری بود چون فردوس یزدان اماریدار او فرخنده رزوان چون تنگ آمد قضای آسمانی که بر رامین سرایت شادمانی ز عشقن در دلش آتش فروزد بر آتش عقل و سبرش را بسوزد برآمد تند توند باد نوبهاری یکایک پرده بر بود از اماری رخ ویسه پدید آمد ز پرده دل رامین شد از دیدنش برده تو گفتی جادوی چهره نمودش به یک دیدار جان از تن ربودش اگر پیکان زهرالود بودی نزخم او به دینسان زود بودی درخت آشغی رست از روانش ولیکن گشت روشن دیدگانش ز رویش رفته رنگ زندگانی برو پیدا نشان مهربانی به دردش هر کسی خسته جگر بود به زاری هر که دیدش زو بتر بود چو بر باره نشست آزاد رامین ز بس غم تلخ بودش جان شیرین به اندر همی شد هم چو گمرا چو دیوانه ز حال خود ناگا همی گفتی؟ چبودی بودی گردگر راه نمودی بخت نیکم روی آن ما چبودی بودی گردگر ره باد بودی زروی ویس پرده در رو بودی چه بودی گر یکی آهم شنودی نهان از پرده آن آرز نمودی چبودی بودی زردم بدیدی فغان و آه پردردم شنیدی چبودی گر گردگر هم در از این پس اماری دار او من بودمی بس. نکام خیش جستن می توانست نجست سبر ایچ راه چاره دانست ز عاشق زارتر زاری نباشد ز کار او بتر کاری نباشد بس از این درد عاشق را کمبار بار بود با درد عشق و نالی زار همی باید. درد دل نهفتن نیارت راز خود با کس بگفتن کاروان شاه موبد که دلداری بهشتی روی همچون ویست در محمل داشت به مرغ شاهجان رسید شهریار از گوهری تابناک که هم آورده بود شادمان بود اما ویس از بخت ناساز خود اندوهی بس بزرگ در دل داشت و همواره مونس رنج و مهنت بود چو در مروه گزین شد شاه شاهان عدیل شاه شاهان ماه ماهان به در هزار آین ببستند پریرویان برای اینها نشستند ز را مشکران و رود سازان زبست سیمین بران و دلنوازان به دل آفت همی آمد دیدن، به جان خوشی و شادی از شنیدن چو در شهرین نشات گونه گون بود سرای شاه خود بنگر که چون بود شه شاهان نشسته شاد و خرم ولی بنشسته به ماتم به روز و شب چون ابر گریان همه دلها به دردش گشته بریان گهی بگریستی بر یاد شهرو گهی ناله زدی بر درد ویرو هرانگاهی که موبت را بدیدی به جای تن را برداریدی. نه نگفتاری که او گفتی شنودی نه روی خوب خود او را نمودی چون این بود او چه در مرو و چه در راه از او خرم نشد روزی شنچا وقتی را از پریشانی ویس آگاهی رسید روی به مرب نهاد به قصر شاه موبت درآمد. و یکسر به دیدار ویس شتافت جهان تاریک شد بر دیدگانش تو گفتی دور شد در دم روانش. به یک هفته به مرغ شاه جان شد تن بیچاره گفتی نزد جان شد چو ویس خسته دل را دید دایه لشادی گشت جانش نیک مایه به دو گفت ای گرام مایه نیازی چرا جان در تواهی میگدازی؟ تو را در دست موبد داد مادر آنگه از پست نامد برادر زوحر خود تو را بیگانه کردند مرا بی دختر و بیخانه کردند کنون در دست شاه کامرانی مرو را همبر و جان و جهانی برو دل خوش و او را میازار که نازارد شان را هیچ حشیار پشیزی را که از دستت فتاده است یکی گوهر خدایت باز داده است اگر فرمانبری برخیزی از خاک بپوشی خسروانی جامعه پاک ز گلگونرخ گل خوبی بیاری به میگون لب می نوشین گساری به غمزه جان ستانی دل ربایی به بوسه جان فضایی دل گشایی به خنده کم کنی مقدار شکر به گیسو کنی بازارم بر دل مردان کنی بر نیکوان سرد رخه شیران کنی بر آهوان زرد اگر برتن کنی پیرای خیش چنین باشی که من گفتم وزین بیش مکن بر حکم یزدان ناپسندی مد بی درد ما را درد مندی جوابش داد ویس ماه پیکرچه گفتار تو چون تخمیست بیبر دل من سیر گشت از بوی و از رنگ نپوشم جام ننشینم به اورنگ مرا جام پلاس و تخت خاک است ندیمم درد و آه دردناک است نموبت بیند از من شاد کامی نه من بینم ز موبت نیک نامی اگر شویم ز بحر کام باید مرا بی بودن بهتر آید ندیمه دیگر بار لب به سخن گشود ویس را به شکیبایی فراخواند و از او خواست که زنگ اندوه از دل بزداید خود را بیا و به شادی نشیند ویس از آن همه گفتار ندیمه اندکی آرام یافت و نشان سرور بر چهره دلنوازش نقش بست شاه موبت شادمان گشت روزی چند به تراب نشست و سپس به نخجیرگاه رفت چو دایه ماه خوبان را بیاراست بنفشه نفشه گل خیری بپیراست ز پیشانیش تابان تیر و ناهید ز رخسارش فروزان ماه و خورشید چو بهرام ستمگر چشم جادوش چو کیوان بدایین زلف اندوش لبان چون مشتری فرخنده کردار همه ساله شکربار و گوهربار دو زلفش مشک و رخ کافور و شنگرف چو زاغی افتاده کشت بربرف رخانش هست گفتی توده گل لبانش هست گفتی قطره مل به خوبی همچو بخت و کامرانی زخوشی همچو جان و زندگانی نشسته وی هم بر بر تخت مشاته گشت مرخوبیش را بخت جهان زوشاد و او از میر غمگین به گوشش آفرین مانند نفرین یکی هفته به شادی شاه موبد گهی میخورد گه چوگان همیزد آن پس رفت یک هفته به نخجیر نیامد از چمانش بر روزی ویست روزی ویست ندیمش را پیش نشاند و از اندوه دو خویش با وی سخن در پیوست و در پایان از او درخواست که نیرنگی سازد که تا یک سال از درگذشت پدرش قارن نگذرد موبت از دست یازیدن بدو بازماند و از او بهره نتواند گرفت ندیمه چنین کرد اما از حکم تقدیر نیرنگ بدون سان اثر نهاد که شاه موبت هرگز نتوانست از ویس بهره‌برگیرد. چدای ویس را چونان بیاراست که خورشید از روخ او نور میخواست دو چشم ویس از گریه نیاسود. تو گفتی هر زمانش درد بهسود. نهان هر کسی مردای را گفت که بخت شور من با من برآشفت. دلم را سیر کرد از زندگانی. و او برکند بیخ شادمانی ندانم چاری جز کشتن خیش به کشتن رسته گردم زین دل ریش اگر تو مر مرا چار نجوئی و از این اندیش جانم را نشویی من این چاره که گفتم زود سازم به دو کوتح کنم رنج درازم کجا هرگه که موبد را ببینم تو گویی بر سر آتش نشینم اگر چه دل به آب صبر شسته است هوای دل هنوز از من نجسته است همی ترسم که روزی هم بجویَد نهفته راز دل روزی بگوید ز پیش آن که او جوید ز من کام تو را گسترد باید در رهش دام که من یک سال نسپارم به دوتند نپرهیزم ز باد و کشتن. نباشد سوک قارن کمز یک سال مرا یک سال بینی هم بدین حال یکی نیرنگ ساز ارحوش مندی مگر مردی شا بر من ببندی چه سالی بگذرت پس برگشایی رهی گردد چون یابد رهایی بهل تا کام موبت بر نیاید وگر جانم براید نیز شاید چو گفت این راز را با دایه پیر تو گفتی بر دلش زد ناوکی تیر دو چشم دایه بر وی ماند خیره جهان بر هر دو چشمش گشت تیره به دو گفته ای چرا گو چشم دایه نبینم با تو دادت هیچ مایه سیه دل گشتی از رنج آزمودن سیاهی از سیه نتفان زدودن سپاه دیو جادو بر تو ره یافت تو را از راه داد و مهر برتافت ندانم چاره جز داد تو جستن به افسون شاه را بر تو ببستن پس آنگه روی و هر هردو بیاورد تلسم هر یکی را صورتی کرد به آهن هردوان را بست برهم به افسون بند هر دو کرد محکم چو بسته شد به افسون شاه بر ما به بردان بند ایشان را سرگاه زمینی بر برلب رودی نشان کرد مران را زیر خاکندر نهان کرد چو باز آمد یکا یک ویس را گفت که آن افسون کدام این جای بنهفت به دو گفت آنچه فرمودی بکردم اگر چه منز فرمانت بدردم ز فرمان تو خوش نودید جستم چون این آزاد مردی را ببستم برامد نیلگون ریز دریا به آب دیده دریا کرد صحرا رسیدان آب در هر زاری پدید آمد چو جیهون رود باری تبه کردان نشان و آن زمین را ببردان بند شاه بافرین را قضا کردان زمین را رودخانه خانه، بماندان بند، بر برشه جاودانه روزی رامین در باغ با گلها راز می گفت. قصه سوز دل باز می راند که دایه از دور پدید آمد. سبب پریشانی رامین دریافت و در شگفت شد. آنگاه میان آنان سخنها رفت. و سرانجام دایرا دل برهم آمد و با رامین پیمان کرد که دل ویس را دو نرم سازد و او را از درد هجران برهاند چو بر رامین بی دل کار شد سخت به اشخندر مرورا خار شد بخت همیشه بی انبو جستی که بنشستی به تنهایی گرستی به شب پهلو سوی بستر نبردی همه شب تا به رو زختر شمردی گهی قرعه زدی بر نام یارش که با او چون بود فرجام کارش گهی در باغ شاهنچاه رفتی زرسوی گوا برخود گرفتی همی گفتی گوا باشید بر من، ببینیدم چنین برکام دشمن چوی ساید به وی حالم بگویید دلش را از ستمکاری بشویید گهی با بلبلان پیکار کردی بدیشان سرزنش بسیار کردی همی گفتی چرا خانیت فریاد شما را از جهان باری چه افتاد شما را ار هزاران گونه باغ است مرا بر دل هزاران گونه داغ است مرا در خرب این آه دلسوس که دورم زان گلستان دلفروز بازار دای پیش آمد یکی روز چونو گردان آن باقی دلفروز چون رامین دای را دیدن جای چو جانن در خور و چون دیده در بای ز شادی خونز رخسارش بجوشید روحش گفتی ز لاله جامه پوشید نمازش برد و بسیار آفرین کرد مرورانیز دایه همچنین کرد زهرگونه سخن گفتند با هم سخنچان ریش دل را بود مرهم فرود ریت را رامین پرده شرم که بودش جان شیرین بر تنش گرم بدو گفت ای مرا از جان فزونتر منم پیش تو از برده زبونتر مرا تو مادری ویسه خداوند به جان وی خورم سوگند چون خورشید چهر و ماه پیکر چون او بانونژاد و شاهگوهر نبودن در جهان و هم نباشد کرا او جفت باشد غم نباشد بدان زاده است پنداری ز مادر که آتش برکشد از هفت کشور اگرچه من همی سوزم زبیداد دل او بر چنین آتش مسوزاد به هر دردی که من بینم ز کنم صد آفرین بر خوب چهرش. بلندی و درستی مر تو را باد مباد از بخت بر جان تو بی تو را من دوستتر میدارم از جان ولی دور است درد تو ز درمان نگر تا تو نداری هرگز امید کتابت بر تو آن تابند خورشید تو را آن به که دل در وِی نبندی که از این دلبندی آید مستمندی. خردمندی و شرم و دانش و رای به کار آید روان را در چنین جای دگر بار جوابش داد رامین که چون عاشق نباشد هیچ مسکین دلو را دشمنی باشد زخانه برو جوینده هر روزی بهانه